به طور کلی الان مباحثی که در لغت اومده بود در اصلاح اومده بود دلائلش یک بحث مجملی الان خواهیم داشت درباره باره اینکه این که ایمان کم و زیاد میشه چه دلائل ایمان داریم که ایمان کم و زیاد میشه یک از اصول اعتقاد علاستانت و جماعت اینه که ایمان کم و زیاد میشه بالا میره پایین هم میاد یه موقع انسان خودش میبینه که قبط ایمانی قوت ایمانش زیاده یک موقع ببینی قوت ایمانش کمه. عدل زیاده از جمله در قرآن داره اینه ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم اياته چی شد؟ زیادت ایمان. با شنیدن آیات قرآن چی میشن؟ ایمانشون زیاد میشه، عضد میشه. بالله ربهم رو توکل از این از ادله سریش بر اینه که چه ایمان زیاد میشه بس ایمان با طاعات و عبادات با تلاوت قرآن با شنیدن قرآن زیاد میشه از جمله آیات در یا ادله بر این که ایمان زیاد میشه قوله خداوند باری تعالی هو انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیسیقن الذین اوتوالکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمان و یزد از نیاد بیشتر شوند تا اینکه که اونهایی که ایمان آوردن ایمانشون بیشتر بشه و یزدداللدین آمنو ایمان آقای چه سریه حالا خودتون بیرینش بیارید هو الَّذی هندلستکین آقای قبل آقای سریه مایده بود درسته هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فامشينين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الجمل <سؤال> آيات الذين قايلهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم ايمان فزادهم ايمان فقالوا حسنا الله ونعم الوكيل ويزيد الله الذين هدوا هذا همهي آيات دلالة داره شده چون که ایمان زیاد میشه. از چی مردید دارن اونها یه وقت نیمایان کم میشه کم نمیشه زیاد نمیشه. درد امر از شفقت اومد اونهایی که گفتن ایمان کم و زیاد نمیشه میاد مال دردشون میاد از کجاست از جمله‌ی احادیث در این که ایمان کم و زیاد میشه فرمود رسول الله ما رایتو مننا قصات عقل و دین ما رایتو من قصات عقل و دین اذهبو للبی راجل الحادث واقعا مردا زعیتنا فسنان می فرمویند یعنی من ندیدم یک زن ناقص عام یعنی بیاید یک مرد حازم یک مرد قدرتمند، را در گروه خودش درگیر یک زن می ترم باید بازی بوازی بکن باید خاطر همین کنسان باید موازی به خودش باشه. ناقصه لیکن داره. از لحاظ ایمانی لحاظ دینی و عقلی ناقصه چرا ایمانش ناقصه؟ چرا دینش ناقصه؟ چون نماز بست مرد نمیتونه کنه در مسجد نمیتونه شرکت کس بکنه منطوری که مرد صرفت میکنه در چه ها، در درس و کلاس و مسایلی که ایمان انسان رو زیاده که مجمالت هایی که زن داره در کنه با بچه ها و فنا بحث قاعدگیش نه صدرش ما رای تو من ناقصاتی افعالا الفاتش متعدده یکی از الفات این ما رأيته من ناقصات عقله ودين ناقصات عقل ودين <تصفيق> ناقصات عقل ودين ولو شهد ذلك الجنهي فالفضل ذلك فهمشين از اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيد که که من کردیم، بعد با دستش چهار بکنه، آبزش بکنم. خب اگر نشسته منم یه سطح فمیسازم. اگر باد نمی‌نیست، نباید خاله. و دلیک از عفونی. ایمان زیب شد نه شد؟ ایمان زیب شد. از جمله احاديث فرمی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا من النار من كان في قلبه متقال و حبة خردل من الإيمان يخرج من النار من كان في قلبه مثقال و حبة خردل من الإيمان إيمان كم أنا؟ كم كمي؟ كمي؟ كمي؟ دو زيك دونية؟ كمي؟ كمي؟ هذه نصوص عدلات قرآن و سنة هل إنك خیلی هم سریحه خیلی هم واضح از جمعه حالی اکمل ایمانا اکملونات ایمانا اجی احاسن هم اخلاق، احاسن هم اخلاق. کسی که اخلاقش از مای بیشتر یک مسئله تذکر بتون بدن خیلی مسئله مهمیه در این, این حدیث ما بینید ای یک ای ایمان کامل برمیگرده به اخلاق کامل خیلی مهمه در اخلاق مثل خارج از درس هاشی هست یه که خیلی مهمه یه چیزی که خداوند در قرآن توصیه میکنه، حالا اون چیزی که برمی به بارترین نوع اخلاق حالا هرچند که اخلاق اخلاق با خدا داریم اخلاق با بندگان داریم در نوع اخلاق با بندگان یک از مسائل خیلی مهمی که خداوند به اشاره میکنه در قرآن اینه با کل عبادی یقولولتی یه احسن ای بندگان، بگو بندگان من گفته نیکوتر بهترین گفته ها به هم دیگر بکنی خیلی مهم ها میکرد من باعث که مظاهر حسم خلقه حسم اخلاق اخلاق نیکه حرف نیک، حرف خوش بزنید یعنی میتونید بگید یک شب بفرمایید میتونن بگید بفرمایید قدمت رو, رو چش با یک لبکند با بهترین قار میتونید اون شفت دعوت بیدید میتونید تجدیدایی بکنید. بهترین ها، نه که قولی که استفاده بکنید. حسن، نه گفت قول حسن بگید. گفت که چی؟ اقول الذي احسن. بهترین ها. بهترین الفاظ. وصلنا نگه یه چیزی مثلا دوستش درصد میکنه همسرش 30 میکنه خلاص می‌کنه. با فلان بکن. نه نمیتونم وقت ندارم. باشه چشم مگر شد. وقت کردم رو حتما انجام بدم. نه اینکه نه نمیشه تو غلط کردی. خود اون یکی معلمه با دانش آموزاشون یعنی تو صحیح زدن و نمی‌دونم نکوهش دادن و شما چرا این کاری کردید و چرا فلان می‌کنی و شما غلطی کردی و شما هیچ وقت سرزنش نمی‌کوش نکونید انس میگه رسول الله هیچ وقت به من ننگوفتن سرزنشش نمی‌کرد رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله মিয়া در بحثم در فرهنگ ما قاضی بعد, بعد جا از جنگ ده قاضی ادبی و تربیتی ترش هست حالا این جور نشم از بحث اصلی من بحث این که ایمان کامل میشه یکی از چیزهایی که ایمان رو کامل میکنه چیه؟ اخلاق جایدون هم که کزنم یکی از چیزهایی که ایمان رو کامل میکنه چیه اززواج درسته؟ نسوی ایمان رو کامل میکنه که اززواج نکردنم تفکر خودشون باشه ایمانشون هرز ناقصه رامون در فکریم باشن که ایمانشون کامل بکنن خب از دل اقوال صحابه دعای ابن مسعود اللهم اللهم زدنی ایمانا و علما و فقحا اللهم زدنی ایمانا اگر زیاد نمیشه چرا ابن مسعود دعا می کنه ایمانش زیاد بشه همچنین گفتی ای عمر رضی الله عنه اطرافیانش میگفت پل و منزاد و ایمانم علو مو بیا پیشینی ایمانم زیاد بشه فیا یسوع اخیر قرون الله میشدن در مسجد برای ذکر خدا واسه ما ده به ما میگفت دست دوستانش رو اطرافیانش میگرفت میگفت دعنا نجلس نؤمن سعه بیا دیگه صدشین به خدا ایمان ایمان بیر من ایمانمون زیاد بکنیم ها خب خلاص این بحث یه ندله در اینکه که ایمان تمو زیاد میشه اما ادلله قرآن بحث زیاد و زیادیه که خودش همونطور که سلف گفتن و ودم های فریم گفتن همجور که صوفیان میگه در بحث نقصان ایمان چون ادلله قرآن بر ازدیاد ایمان بود میگه سبقتی که سآل میکنن در بحث به عزتالدین آمنو سآلش میکنن خب این زیادی هست کمی کجاست گفت که ما منشه این یزید و چیزی زیاد نمیشه چی تمام میشه من میشهیم و فرا الله الله و نداره چیزی زیاد نمیشه مگر چیزی بالا مگر پایینش هم میاره چیزی که بالاور خود به خودم پایین میاد خب این خلاصی ادله حالا بیام بحث ارجاع و مچه اخالشون رو بررسی میکنیم ببینیم اینها چی میگن؟ اینها در چه زمینی از گمراهی زندگی میکنن چه اقبار دارن چه گفته هایی دارن کول ما اهللت اومدن با اشون مبارجه کردن کتاب نوشتن و اقوالشون و قایدشون رو بیان کردن مرج اقوال مختلفی دارن اصل خود کلمه ارجا از تأخیر میاد کلمه ارجا ارجا از چی میاد؟ از تأخیر در اصطراح تأخیر عمل از ایمان یعنی عمل رو هیچ کار از ایمان بدونی عمل هیچ کاره این عمل رو خارج بکنی از ایمان این بهش میگن ارجا حالا مرجع کسانی هم که چی؟ پس چی میشه؟ اعتقاد دارن که عمل جز ایمان نیست. ایمان هیچ, دخ... هیچ دخالتی در ایمان نداره. چرا اینجایی فکری ارجاب وجود اومد سببش چی بود؟ بحث تاریخی دارم. بحث تاریخی چطوره؟ چنینی که وقتی که خوارج اومدن، تستدلال کردن به فرمودی خدا من هم یحکم به من انزل الله فاولا هم الكافرون کسی که خود را اجرا نکنه کافره الان شکمی خودشون می درستن دوز را می زناکار را می کشتن می اومدن اشخاصی که گناه هایی که انجام میدادن را سرشون می زدن. حتی اگر زنم حامله بود نگاه نمی کردن اومدن جلو این تقیان جلو این زیادی جلوب این غلوب دذیر رو بگیرند. از جمله از اونهای که اومدن روبرو بشند با اینها ابو حنیفه بود. و همچنین امام حمد. اومدن اینا جلو اینها را رو بگیرند. با رعی، با فکر خودشون و عقل خودشون خارج از نست و قاطع قاتل قرآن و سنت. اومدن گفتن. جلو اینها ایستادن گفتن باجان عمل که کاری نمیکنه به ایمان. ایمان یه چیزی؟ ایمان من و شما باوقت فرق نمی کنم. با گناه انجام دادن که ایمان کم نمیشه ایمان یک چیز هست. ایمان در قلب این ایمان از بین نمیره مگر اینکه انسان با لفظ خودش ورانه خودش میگه من کافر مسلمان نیستم گفت که من مؤمنم دیگه خلاص ایمانش باوقت با رسول الله با هیچ کس با عمر فرقی نداره آیا این حرفشون درسته بیامون ترازوی بکنیم اول عقایدشون می بعد ترازوی می کنیم عقایدشون عدله شنو بردی نیکنی قول اول خفیف ترین قول اینها مرجعی طقه هاست همونطور گفتم ابو حنیفه و حماد ابو حنیفه و حماد گفتن که ایمان تصدیق به قلبه و گفته به زبان با قلب تصدیق بکنی و با دباره اقرار بکنی اقرار عملی نماز کندن و روز گفتن یا نیست چون عمل جز ایمان نیست ایمان چیز درونی هست، دیرونی نیست. و اعمال خارج از ایمان هست. این قول عبرد. قول دوم قول جهمی هست. قول جهمی است. اطباع از جهم فیلسوف اسلام. فلسوفی که امرد اسلام و خراب کرد. کسی که با فلسفه هندو و هندی ها و یونانی ها نشستند، اومد عقیلی مسلمان رو خراب کرد جزه بزرگترین گمراهانی که نقش اساسی در تخریب اسلام دارد جهب نصطفان و جهل و درهم حالد دخالت میاد در روز قید و قرآن جهل را زب میکنه میگه شما زبای حقوقتون رو زب بکنید و منم این را زب میکنم زبش میبنه جهل در هم جهل و درهم هست برمیگرده به تاریخش بر میگرده به یک از شاگردین شاگردن لید من افسانی که رسول الله را سح کرد واضه این ها باوزنش نشستند و دستیه هایی بودن که اومدن این را تحریف بکنن اول این کاری میکرد درباره اصحاب صحبت کردن صحاب را تکگیر کردند بعد از تگیر صحابه اومدن و وقدم و ندونستن و بعد اومدن درباره خاص صحبت مبتد کردند نه اول با با باسط بین ما الله. این واسطه رو قطع کردن با قد شدن این واسطه این دین به ما نرسیده خب دین نرسیده چه کار باید بکنی؟ اعطا باید خود بکنه و درباره خدا بیگیر رو برو هر کفری که درشون خواست هر چیزی که از این سرشون در اومد گفتن به خدا تا جایی که منصور حلاج ابن فارد ابن عربیه دید. چی بگم؟ اومدن گفتن میگه ابن عربی میگه حتی این سهی که خداست. فکر نکنید این فکر نیست دار تو همین جزیره خودمون تو همین بندرست بازت تو همین مدارست دینی این این افکار هر همین چشم و خبرم یکی از اونها یکی از اون اشکاسی کلا با اینوان شیخ شنافته میشه میگفت که ولی چی میشه منم خدا باشم سکم خدا باشه. یعنی خدا من این مطلقات نجس رو در خودش خیلی خبر گرده نه اقلا سبحانه و تعالی علمان یا خلون علوان سبحان الله. عقل بشر به انسان اجازه بده خداش رو در سک بیدینه سکش رو خداش بزنه غذایی که میخوره خداشه خداش داره میخوره و خداش خود رو داره فرق و, خدا و بیرون میده نجاسات رو بیرون میده این خدای انسان بشه سروش الهی خمشهی و نمیدونم همه این سران دمراهی که در تلویزیون و رسانه ها و سیدی و میدی و نوار در بین طلب و دانشجو جو داره میشه عقاد جهنی اولا چیه؟ ببینید که چی گفتن اولا؟ این اقوالتون ها بهتون رو خلاته خرچند که بیشتر باز میشه بعض اثقات هاشون در بحث جهنیه در بحثشون در ایمان چی نیم گفتن؟ که ایمان فقط شناخته فقط شناخت دیگه قلب تصدیق بکنه و نمیدونم این مسائل اعمال قلبی و اعمال جواره اصلا داخل ایمانی بلی این آزاد، اینها اومدن ابلیس را هم مؤمن درستن ابلیس میگه چی گفت؟ ابلیس گفت رب بیم بی ربی اغويتني. رب بما رب. اقرار کن که رضیت دیانت. شناختش داره برای فروردگار یا نه؟ شناختش. فرعون مدت بیت بالاتر بود. چی گفت؟ خدا من چی میگه داره؟ و جحدو بها و سیقنه ها هم پوستم غیر از این که تصدیق و شناخت داشت دوره خدا یقین هم داشتن وجه پس بس فرحان و عبدیس هم سلمون رو چه کار بکنن بس هیچ زنا که میکنه اون چخص جهامی عبادت باسش بعد قصه موسی و شبان رو میاره کجایی که چارکت به جزم و فرحان بکنم موسا میاد انکار میکنه مشت شاعران مزخرف شاعران گمراه این چریک سر شعر های دروغ واسه انبیا رو می‌بندن به خاطر رژیم به خاطر اینکه فکر گمراهی رو در امت تطریح بکنن موسی میاد کار میکنه به شبان تو چرا این کار میکنی؟ این کار این طرز عبادت نیست بعد خداوند میاد دیجی تشنش میکنه موسا تو غلط کردی چرا این رو کردی این بنده من داشت عبادتن می‌کرد هر کاری دلش خاص بکنه هر خاص برای عبادت بکنه این پول صوفی‌ها زنا می‌کنه دیگه هستم نیکه برای خدا دارم زنا میکن تا جایی که یک از سوپی ها زنا میکرد یک شخصی اومد یک از طلبه هاش اومد دید که زنا میکنه میگه چه کار میکنی گفت که اینی اصد و سقرتم دارم اون سراغ ها و اون مرزه های بین من و دشمن ما و دشمنان را دارم, دارم میبندم زنا داره میکنه اینم گمراهی این هم اون اشخاص و سرانت سرابوف و سیفیه میدونید این سیفیه کی هستن؟ هستنالا که در امت این بخنه کردن با این بدهتخاشون با این کفرهاشون و این شرکهاشون. باید ندونید. هستن هم خودمون و میشنوید ما که شنیدیم و زیادم شنیدیم و شما هم خواهید شنید. این قصر این شبان یکی از رو که یک ها با هم بحث می‌کرد میگه میگه چرا شما اینجوری حرف رو می‌ذارید بدعت رو این کار میکنی و خدا من فرزنش بود موسی گفتم ای بدبخت کجا موسی گفته کی گفته که موسی جن گفته و کی گفته که خدا من کرده موسی مشت شعرهای مزخرف شعرای بی عدب و بی تربیت و شعرایی که غیر از شعرهای عاشقانه و بی ادبانه چیز دیگه ندارن اومدن واسه ما دین بیارن وحی شیطان مستشون اومده؟ بله اینو بدونید که شیاطی نم وحی میکنن بر اولیه خودشون اولیه های شیطان هم دارید بله این شعره ما اولیه شیطان هستن این قول جهامیه قبول نمیکنم نمی چرا که از منابع شما منابع هستشون هم شعره شعره شعره شعره مثلا ضربت الله هم کمن عربی یک از اصلاح ما میگو یک زمانی به حجمیر یه زن کاری می تقریبا جلس وجهش می کنه در وجه می که می گه شاید ورگی ها مثلا چیزا نگفتن بس زمانی که این کار رو خود مثلا یه مثلاً در یعنی همین اون شعرها نسبه ایده بوده هر ها مثلا هنچ که سرکلی هایشون هیچ من برای قبول ندارم فهمنه... پیانبر هم بیهود اومدن ابن عربی شد وقتی ما پیانبر و خدا شد واسه ما بسی کل همینه نمیشه باشون و بحثی هست مثلا که ما میگیم خداست که میکنیم می میگیم مذهبی مثلا مظاهر خداست دیگه که اول میگم خداست بعد که نم ازر خداست. ما نگه بکنیم بحث منحرفین و تروخ استدلال و بحث با اینها اولین چیزی که باید باشون بحث کرد بحث قرآن و بحث شریعته آیا بشر لازم دارن شریعتی داشته باشن یا نه بحث قرآن که شد و لزوم شریعت که شد و بحث قرآن که شد اطلاعات عقلی میامم آیا قرآن اینچین مسائلی درش هست آیا کتاب های آسوان اینچین مثالی درش هست این باید پله پله بریم جلو پله پله بازده موجوده و هر قولی را باید پله پله حل بشهده در جوی خودش چون الان مشکلی مثل سعایت و کاران این سعایت و کاران بطونی داره و نمیزنه مثلا حد فض داره بله که بازدی هم اجموعا در نظر مسلمان ها کافره و صلاح الدین ایوبی میاد حلاج رو گردنش میزنه و جنب زرخم هم خالد فکری میاد همچنان این اشخاص بودن و هستن و قرآن بود این اشخاصی که برای قرآن تا جایی که مثلا می آید جهمی را هر کسی برای خودش یک مذهب مسئله‌ای داره اگر اگر شیه باشه میگه اقیم الصلا ایمان به ولایت علی او ایمان به ولایت علی همه قرآن بس داره و بدن قرآنی ولایت علی اگر معتزلیه و اگر جهمیه چیه بدن قرآن ایمان به عقل هرچی شد عقل تقدیس عقل تقدیس عقل ما این بطر عقلی که جلو من گذاشتن و ما قدر عقل خودمون تلا میدونیم اینا فردی اون چیزی که ما لمس میکنیم اینها پا فراتر از این عقل ما خودمون گذاشتن اینها این حرفاشون مخالف با طبع بشری داره و مخالف با نفس قرآنی داره علا از دوست قرآنی که زیاد و میادش به در باب حتات موسافت الحرام و عرش سوا و خیلی از مسائلی که هست، بحث مسائل فطری انسان. هیچ انسانی قبول نمیتونه بکنه که اون مدخرش خدا، که اون غذایی که داره میخوره خدا. این خدا هوا باشه، این خدا سگ باشه. شوفشون چیه؟ میگن که خدا ماده هست یا ماده نیست. اگر ماده نیست بود همه جا باشه. خدا ماده نیست در نتیجه همه جا میتونه باشه. فرشته‌گل اینکار میکنه، وجود خدا را اینکار میکنه. بحث یک ماده این ماده کی شناخته این ماده یعنی چی؟ ما بلفرد در وقتی که میخوابید خیالی داریم برای خودمان. آیا خیال هست یا نیست؟ هست آره این خیال هست این خیال چیه؟ ماده هست یا غیر ماده؟ نه ماده هست مبارزه با طبع بشری انسان ماده هست چنان مادهی؟ میگه این خیالات و توهماتی هست که پدرانت انجام دادن و در ذهنت میاد اون بابا جان میگی من دیدم خودم که بالای دیوار راه میرم فردا همون چیز واسم رخ داده شما میگی اون چیزی که قبلا بوده میگه نه یک از پدرانت حتما این کارو کرده برای این دیوار رفته که تو رفتی بابا جان این دیوار به این شکل و به این خواب قبلا پدر که پدربزرگم و یکی از روش راه بره من دیدم سوار ماشین میشم ماشین BMW همین چشمشم خوابش دیدم آیا این پدر بزرگان پیشین ماشین BMW داشت سوارش بشن؟ ماشین BMW داشت. میگم نبکنی مبارزه با فطرت بدری آیا این خیال این خوابی که هست این رؤیایی که هست ماده هست؟ این ماده یعنی چی؟ عقل کوچک انسان ماده رو بده این ماده هست، از چی ساخته شده؟ ماده از سخته هست، از درخت، این ماده از آب، این ماده از فلانه، این از آهن این ماده در شده گره در بشری خب ماورای این ماده، آیا میتونی چیزی ماورای ماده باشه؟ بله میتونی باشه آلا خدا چیه؟ زربران آمده خدا ماده هست یا غیر ماده؟ ماده فکر انسانه لیزه کمیتر هیشهی به وقت میعال بسیر فلا تدری الله الامثال بری خدا مثال نداری ابن عربي داره وقتی یک دختر میگه نه نامزولم خدا فلا تدر خدا گفته فلا تدر بول الله الامثال ای بعد بخش مثال به خدا نداره وقتی همین گفتم اول باید ما بیام این قرآن رو جا بندازیم نیاز به شر بشر باید شر داشته باشند دارش شریعتم لازمیه بشریتی و لازمیه بشریت وحی الهی وحی الهی که ما الان داریم قرآن خدا الا این بحث انشاءالله در بحث از معصفات هم خواهد اومده قول زبوم قول کلاویه و اشاعره اشاعره چینین میگن که ایمان تحصیقه به قلبه تحصیقه و بعض ایهاشون هرچنکه در کتبهاشون مثل غزالی میان جه هایی مثلا میگه ایمانی شناف مقصد شناخت در اشاعره همون تحصیقه و این قصر برخلاف جهامی ها تصدیق قلب را قبول دارن. میگن باید قلب هم تصدیق بکنه. اعمال قلبی را قبول دارن. لیکن اعمال جوارح را قبول ندارن. قول دیگه هم دارن. قول موافق با اهل سنت و اشعاره دارن. لیکن مشهور در مثل کلابی و اشعاره اینه که ایمان تصدیق و قلبه و اعمال کلوبم ضمن تصدیقه قول چارم قول کرامیه اتباع عبدالله بن کرام سجستانی عبدالله بن کرام گفتنه که ایمان گفته به زبانه و فقط ایمان یعنی این که به زبانه بگی من مؤمنم دیگه تحصیقه به قلب اقرار و شناخت و اینا هیچ تأثیری در ایمان شخص نداره با این مذهب چی میشه؟ منافق میشه مسلمان یا نمیشه؟ منافق هم میشه مسلمان. منافق هم حق ما داره که بده. چون با زبانش گفتیم من مؤمنم. و هر مؤمنی هر مؤمنی در مذهب کرامی چی میشه؟ هر مؤمنی هر, منافق هر منافقی مؤمنه. مذهب پنجم در بحث ایمان برخلاف اهل سنت مثل ماتردیه هم ماتردیه و اشعاله تقریبا به هم نزدیکه گفتم که ایمان تفتیقه به قلبه زبانم که از جمله اعمال جواره زبان دلیلی بر تفتیقه دلیلی بر تفتیقه ایمان تفتیقه به قلبه و زبانم قلعا این نزدیک تنین فرقه بهله حل سنت ماتریدیه که حنفی های خودمون احنافی که هستن معمولا ماتریدی هستن لیکن معمولا نبدونه در ارزدش الا مرح برا خود خبارج مدخبشون چیگه و معتدله در بحث ایمان خبارج و معتدله ایمان در نزدانها اعتقاده به قلبه گفتن قفت با و زبان در عمل جواره لیکن. اعمال جواره در نزد خوارج برخلاف اهل سنت کم و زیاد نمیشه اگر یک دی که ایمانت رفت بسنخ شدی رفتی همه ایمان رفت اگر یک در ایمانت کم شد این همش رفت خواره که گفتن مرتکب کبیره در دنیا و آخرت کافره و در آخرت خالد و مخلد در جهنم باقی خواهد میده. مستدره چی گفتن؟ همینجور؟ نه. در نظر خوارش به شود. یک شمد یک گناهی انجام داد دیگه میتونی بهش کافر. زنا کرد، دزدی کرد، غیبت کرد، دروه گفت کافری. مستدره گفتن نه. در دنیا نه مؤمنه، نه کافری. مندلتون بین مندلتیه. در دنیا نمیگه اشکافت نمیگه مسلم. ولی در آخرت خالد مخلد مخلط در جهنب. بخاطر همین در راویان حالی ابن میگه غیر ممکنه که یک خارجی دروغ بگید. خارجی دروغ نمیگه. خوارج دروغ نمیگه. این یک هست و در خوارجه. خاطر همین مسئله وقتی که میری آمان که عبادی هستن همیشه شون ریش دارن پیراهن رو شون رو مشروب کمی کنید مشروب نمی خیلی خوردن مشروب در مهرشون کمه چون گناه های کبیره رو کف میدونه عبادی که از گروه های خوارده همه تعریف برای سنت غیر از این که ایمان کم و زیاد نمیشه عدله الان ادله عدله مرجعه عدله مرجعه بر اینکه ایمان کم و زیاد نمیشه مرجعه به استدلال کرده، مرجعه این گفتن الان قدر اون مقدماتی که خوندیم الا میدونید گفتن که ایمان یعنی تصدیق. در لغت این تصدیق و خداوندم با لغت عربی با ما کرده درسته؟ حرفشو قرآن عربیه و ایمانم در لغت عربی می تصدیق پس ایمان میشه تصدیق عملم شریکش نیست و خداوندم میگه و ما انت به مؤمنه لنا و مفترینم جبوره مفترین میگن معنی اینا آیا ما انتبه مصدقه لن آیا این حرفشان درسته یا نه رد اوله رد اونها وجه اولش اما اینکه قرآن با لغت عربی فرستاده شده ما قبول داریم رو و چشم قرآن عربیه ما هم قرآن قبول داریم لیکن آیا الفاظ قرآن مباحث عبادیش تفسیر شرعی باید بشه یا تفسیر لغوی خداوند در قرآن میفرماید اقیم الصلاه نماز را برپا بدارید در لغت هم صلاه یعنی دعا من میام دعا بکنم وقت نماز شد دعا میکنم آیا من فرضمو ادا کردم نمازمو خوندم یا نه خیر کفر یعنی حرف بزنه خافر و خارج از ملت مسلمان نیست. چرا چون نماز اون چیزی که شرع واسمون تا این تکلیف کرده هیئت و افعال خاصی اقوال خاص اقوال عقلی خاصی که در وقت خاصی خونده میشه این نماز است که در لغت معنای دعا ولی در شرع فرق میکنه ایمان الهمی دور بل ما قبول بکنیم اگر قبول بکنیم که در لغت تفسیر تصدیق قبول بکنیم در لغت تفسیر آیا این لفظ ایمان باید با لغت تفسیرش بکنیم یا با استلاح شرع با استلاح شرع با اون چیزی که در اومده حد حتشن که در لغت همونطور که قبلا گفته شد ایمان در لغت هم تصدیق همراه چیه اقرار تصدیق همراه اقرار و یقین و انقیاض و التضام دومن، وجه دوم گفته آنها که اعمال خارج از ایمانه چون ایمان نهی تصدیق و تصدیق هم در قلبه این گفته اشتباه چرا؟ گفته این که ایمان تصدیق و تصدیق در قلب ما قبول داریم لیکن ما تصدیق در اعمال جوار هم داریم اعمال جواره هم تصدیق داره اعمال جوار هم تصدیق داره کی گفته که تصدیق فقط در قلب تصدیق در اعمال درگاه هم داره مثال دلیل دلیلش اینه حدیثی که در بخاری و مسلم دارین ان الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرك لا محاله ادرك ذالک لا محاله خداوند نوشته برای انسان اون اندازه‌ای که زنا میکنه و یا اون اندازه‌ای که دو زنا میشه و نمیتونه ازش فرار بکنه حالا این اندازه چه قدره يفزن فزن العين النظر، فزن العين النظر، وزن اللسان المنظر، والنفس تتمنى وتشتهي، زناي تشش نذرة، زناي زمان جيت كفطار، والنف تتمنا وتشتهي، ميلو جراش بيدام يبونا نفس إنسان، والفرج فرج عضي عضي. اوتری یصدق و زاهدیک او یکذب تصدیق میکنه اون گناه اون زنا یا تصدیق میکنه اون زنا رو انجام میده او یکذب او تصدیقش میکنه حدیث بخاری شماره 5889 5889 و مسلم 2657 2657 حالا شاید این شماله نیابید میتونید از کامپیوتر استفاده در یافتن این حدیث وجه ثبوت این که خداوند در قرآن از ایمان به معنای تصدیقی یاد کرده در پرمودش و ما انتا به مؤمن لنا ما اینو قبول نداریم چرا؟ ما گفتیم برادران ایوی صفت. وقتی که اومدن دروغ گفتن گفتن که برادرمون گرگ اورو خورده امر غیبی بود که پدرش دیده یا پدرش ندیده پدرشون ندیده یعقوب ندیده بود امر غیبی بود. آیا میشه در امر غیبی تصدیق بکار برد نه ودمند اومد در اینجا لفظ شاملتر از تصدیق به کار ببره گفت که و ما انت به مؤمن لنا گفت ای پدر تو به ما ایمان نداری یعنی ایمان همراه با اعتماد تصدیق همراه با اعتماد یعنی غیر از اینکه تو تصدیقمون کنی. در این قضیه اعتماد به ما هم نمیکنیم. اطمینان به ما هم نداری همون یک بحثی که ما گفتیم ایمان در لغت هیچ وقت به معنای تصدیق تنها نمیاد. بلکه تصدیق همراه چیه اعتماد و اطمینان و, و اگرم قبول داشته باشیم اگرم قبول داشته باشیم که در این آیه ایمان به معنی تصدیقه چی میگیم؟ میگیم اینجا سیاه ایمان به خدا نیست ایمان بین چیه؟ ایمان بین بشره بلپرزن بگیم این ایمان لفظ ایمان به خدا ایمان به الله شرط و شروط خودش داره لیکن در داخل بین بندگان میشه ایمان به معنای تصدیق اگر قبول داشته باشیم که قبولش نداریم میشه به پار برد حالا این مسئله هم بازم میگم حالا شبهه سوم این شبهه اولشون شبهه ثبومشون رو میزنیم برای درست برستشون خیلی طولانی شبهه دومشون گفتن که اگر ما بگیم ایمان اعتقاد و عمل سبب میشه که ایمان حقیقتی مراکب بشه آب بلاوی بنزین آب بنزین بشه شکر بلاوی آب آب شکر بشه مخلوق میشه. درسته؟ میگه اگر ایمان بگیم که اعتقاد و عمل میشه حقیقتی مراکب اگر قسمتی ازش بره مثل کلمه ده قسمتی ازش بره همش میره ده صفرش رو برداری ده از بین میره کلش از بین میره الان الان این چیز با عقل در میاد عقل ما قبول میکنه اگر یه چیزی یک دیکش رفت همش میره عقل ما میپسنده شما کلمه ده رو بنویسید بنویسید سالا به عددش یا به حروفش. نمیشید مثلا به حروف نمیشید. ده. را دارید. همه از یک همه از یا دانش مست. دانش مست. همه از این کلمه ده. بینیمیشت عددش. سفرشو بردارید. یکی کش یکیش یکیش شما که دارید دیگه یک همه میره ما در واقع از که چش اون چیزی که یک دیکش بره همه, چیز همه, همه چیزش نمیره حالا چه اسمش باشه و چه ذاتش باشه اگر یک چیزی یک تیکش بره همه چیزش نمیره پس اگر یک شخص مؤمنی گناهی انجام شد انجام داد چی میشه؟ بچهار نقصان کمال واجب میشه. یه چیز ازش ناقص میشه. اون کمال واجبی اون چیزی که بهش مکلفه، چی؟ ناقص میشه. نه اینکه همش از بین میره. انسان رو در نظر بگیرید یک انسان ایدتشو قرض بکنید. یک تیککش رو از بین ببرید. چشمش رو از بین ببرید. گوشش رو بکنید. حقیقت اون انسان از بین میره. دیگه به اون شاخ این م... انسان نمیگی، پس این مثالی که اون یه چیزی، یک تیکش را همش یجیش رفت یک حقیقت مراقبیه است. انسان هم حقیقت مراقب روح واجد است، روح واجد یک تیکش را تیکش را همش میره خیر. مگر اینکه گفت به طور کلی براش اینکه چقدر به منابع بیاردش باشه، انسان انسان انسان از بین بره. خب این خونه بحث شبهات مرجعه که انشاءالله در درست آینده شبهه دیگری خواهیم داشت در بحث شبهات مرجعه. فرکتی تخالی سیدیو داریم رو بحث. سبحانه کنم خمید. سبحانه کنم خمید. سبحانه کنم خمید.